موش و زاغ و آهو و سنگ پشت روزی بود و روزگاری بود یک روز یک زاق سیاه در ضمن پرواز و گردش به صحرای سرسبز و خوشمنظره ای رسید و برای رف خستگی بر شاخی درختی نشست و همینطور که از چپ و راست تماشا می کرد یک شکارچی را دید که دارد میآید. زاق اول کمی ترسید که مبادا سیاد برای گرفتن او میآید ولی بعد با خود گفت: «نه. تا کبوترها و بوقلمون ها و آهوها و خرگوش و مرغ و حیوانات دیگر هستند کسی کاری به زاغ ندارد و همیشه خطر و گرفتاری برای کسانی است که ارزشی دارند. سیاد به زاغ نگاه هم نکرد و قدری دورتر از درخت دام صیادی را پهن کرد و دانه پاشید و خودش رفت در سایه بوته علفی که تا آنجا خیلی فاصله داشت خوابید. از طرف دیگر هم یک دسته کبوتر بازیکنان و پربار زنان رسیدند. همین که از بالا دانه ها را دیدند خواستند روی دانه ها بنشینند. رئیس ایشان که کبوتری دنیا دیده بود و از آنجا که دور گردنش خط سفیدی بود او را توقی می گفتند. به همراهان خود گفت عجله نکنید. سب کنید ببینیم خطری در پیش نباشد. کبوترها گفتند نه نه نه ما خیلی گرست نیم ممکنه دیگران بیاین دانه ها را بخورن اینجا هم میان سهرایش خطری نیست پس همه با هم فرود آمدند و در دام گرفتار شدند پرندگان همین که فهمیدن در دام افتادند خیلی غمگین شدند و هر یک کوشش میکردن خود را رها کنند ولی ممکن نبود از آن طرف سیاد با خوشحالی از جای خود حرکت کرد که بیاید و شکارهای خود را بگیرد. زاغ هم بالای درخت تماشا میکرد. در این وقت کبوتر توقی به همراهانش گفت بچه ها گوش کنید. خیلی عجله کردید. ولی حالا نباید وقت را تلف کرد. شکارچی دارد میآید و اگر قفلت کنیم فرصت چاره از دست می رود. اینطور که شما هر یکی به فکر خودتان هستید فایده ندارد. باید همدل و همراه باشیم و همکاری کنیم تا نجات پیدا کنیم. کبوترها گفتند: آقا چیکار کنیم؟ هر چی بگویی میکنیم. توقی گفت: بیایید تا سیاد به ما نرسیده با هم پرواز کنیم و تور شکار را با خود ببریم تا بعد من راه نجات را بگویم. کبوترها قبول کردند. و با همه توان تور را با خود به هوا بلند کردند مرد سیاد هم به دنبال آنها میدوید که شاید خسته شوند و به زمین بیفتند هرچه چه صياد تونتر میدوید کبوترها هم تونتر میرفتند زاغ که این وز را تماشا میکرد چون هیچ وقت زرنگی از مرخان ندیده بود خیلی خوشش آمد و او هم از پی آنها پرواز کرد تا ببیند آخرش چه می شود کبوترها مدتی رفتند و سیاد هم دنبال آنها میدوید توقی گفت بچهها تا وقتی این سیاد ما را میبیند دست از سر ما بر نمی‌دارد و ما به زودی خسته می‌شویم. بیایید از این طرف خود را به پشت دیوارها برسانیم تا دیگر ما را نبیند و امیدش قطع شود از راه خود را به طرف آبادی کچ کردند و چون پشت دیوارها ناپدید شدن سیاد دیگر از دست یافتن به آنها معیوس شد و برگشت. آن وقت کبوترها گفتند خب حالا چگونه خود را از این تور نجات دهیم؟ توقی گفت این کار دیگر از خود ما ساخته نیست و باید از همکاری و کمک دیگران استفاده کنیم. من در این نزدیکی یک موش را می شناسم که مدتی در یک خانه همسایه بودیم و من به او خوبی های بسیار کردم و نام او زیرک است او می تواند رشته های دام ما را با دندان خود ببرد و فایده دوستی و مهربانی با مردم در چنین وقت ها معلوم می شود پس در خرابه ای که منزل موش بود فرود آمدند و توقی موش را به یاری خواست موش از دیدن آن منظر تعجب کرد و به توقی گفت این رفیق مهروان و آن همه کاردانی و هوشیاری چه شد که به دام افتادی توقی گفت اول به طمع دانه بعد به سبب عجله بود علاوه بر این در دنیا ماجراهای خوب و بد بسیار است و هر کسی گاهی اشتباه می کند اما شخص عاقل آن است که ناامید نشود و حالا وقت این حرف ها نیست خواهش میکنم کنم زودتر دوستان مرا از این بند نجات بده موش هم فوری مشغول بریدن و چیدن رشته ها شد و چون اول به بریدن بندهای توقی پرداخت توقی گفت دوست عزیز اول رشته های بند دوستان مرا باز کن موش گفت بیانها هم می میرسم من که از تو خوبی بسیار دیدم علاقه دارم اول تو رو آزاد کنم توقی گفت از وفای تو سپاسگزارم اما چون من دوست تو هستم اگر اول آنها را خلاص کنی اگر چه بسیار هم خسته شده باشی درباره من کوتاهی کنی اما با همکاری اینها بود که من هم از چنگ سیاد خلاص شدم و چون من رئیس و پیشوای آنها هستم ام این است که اول سعادت آنها را بخواهم. کسی که پیشوای جمعی باشد باید در هنگام بلا و سختی هم در غم آنها شریک باشد و با آنها همراه باشد. نه اینکه فقط هنگام خوشی بر آنها ریاست کند. این است که خواهش می کنم اول دوستان مرا به آزادی برسانی. موش گفت آفرین آفرین به فکر روشنه تو که به راستی نشانه پیشوایی و بزرگواری همین دلسوزی و قمخاری درباره دیگران است پس با سرعت تمام بندها را برید و همه را آزاد کرد و با خوشحالی از هم ودا کردند و رفتند موش هم رفت توی خانهش زاق که دستگیری و کمک موش را دید خیلی در دل خود او را ستایش کرد و به دوستی او مایل شد و با خود گفت من هم از چنین حادثهی در امان نیستم و داشتن دوستی چنین خیرخواه نعمت بزرگی است. پس آهسته به در خانه موش آمد و او را به نامش که زیرک بود صدا زد موش گفت من را نمی شنسم. کیستی و نام مرا از کجا می دانی و از من چه می خواهی زاغ گفت من زاغم و خانه من در فلان جاست. تا امروز بدخواه تو بودم اما امروز از اینجا میگذشتم. گرفتاری کبوتران و جوانمردی و وفاداری تو را درباری ایشان دیدم و فایده دوستی و همکاری را فهمیدم و حالا امید و آرزو دارم که مرا هم به یاری و دوستی خود قبول کنی و بدانی که بعد از این از جان و دل به دوستی تو وفادار خواهم بود. موش جواب داد از حرف های خوب تو متشکرم ولی این را بدان که میان ما و تو دوستی نمی شود. چرا که موش خوراک زاق است و زاق دشمن موش است و هرگز میان قوی و ضعیف و گوسفند و قصاب دوستی معنی ندارد کسانی میتوانند با هم دوست باشند که سود یکی در زیان دیگری نباشد و این نخستین شرط دوستی است زاق جواب داد بلی زاغها دشمن موشها هستند اما وقتی من فایده دوستی تو را می دانم، دیگر آزاری به تو موش گفت این حرفا قانه کننده نیست دوست خوب و حقیقی کسی است که با دوستان رفیقش هم دوست باشد و با دشمنان رفیقش هم دشمن باشد و شخص عاقل باید از دوست دشمنان خود و از دشمن دوستان خود هم دوری کند وقتی تو با زاغ ها دوستی میکنی و با دیگر موش ها دشمنی میکنی دوست بودن با من چه معنی دارد زاغ گفت ای زیرک من آنقدر جوانمردی و وفاداری تو را میپسندم که دیگر با زاغان دوستی نمیکنم و با موشان هم دشمنی نمیکنم من مثل آدمها نیستم که برای فریب دادن و گول زدن یکدیگر هزارها قسم میخورند و قول میدهند و بعد از اینکه کارشان گذشت بر خلاف آن رفتار میکنند من زاغی بیش نیستم اما به اندازه زاغی خود شرافت دارم و بسیار سخن گفتند و داستان‌ها نقل کردند تا سرانجام موش فهمید که زاغ درست می‌گوید پس با هم عهد دوستی و یکرنگی بستند و موش از سوراخ بیرون آمد و از دیدار یکدیگر شاد بودند و تا چند روز از وفاداری و بی‌وفایی آدمیان و جانوران داستان‌ها می‌گفتند و میشنیدند. یک روز موش به زاغ گفت خوب است تو هم در همینجا آشیانه بسازی و نزدیک هم باشیم. زاغ گفت. اینجا محل رفت و آمد شکارچیان و نزدیک راه مسافران است و آسودگی کمتر بد میآید اما در سبززاری که بر لب چشمه آبیست و من و دوست دیگرم سنگ پشت منزل داریم جایی باصفاست و خوراک برای من و تو فراوان است و محل امن و آباد است و چه خوب است تو هم در محل ما منزل کنی و یقین دارم که آنجا به ما بسیار خوش می‌گذرد. موش دعوت زاغ را قبول کرد و زاغ موش را در سبدی گذاشت و برداشت و پرواز کرد تا به سرچشمه سنگ پشت بسید. سنگ پشت اول در آب پنهان شد اما چون صدای آشنا شنید بیرون آمد و از دیدن زاغ خوشحالی کرد و زاغ آنچه را دیده بود شرده. سنگ پشت هم که بسیار دنیا دیده و با تجربه و چیز فهم بود از جوانمردی موش ستایش کرد و مشغول صحبت بودند که دیدند از دور آهوی دوان, دوان می آید چون گمان کردند سیادی در پی آهوست فوری زاغ بر درخت پرید و موش به سوراخی خزید و سنگ پشت در آب جست ولی وقتی آهو رسید قدری آب خورد و بعد مات و مپوت ایستاد و اطراف بیابان را نگاه میکرد. زاغ که بر سر درخت بود چون دید سیادی به دنبال آهو نیست سنگ را صدا زد. موش هم بیرون آمد. سنگ پشت هم از آهو پرسید چرا ناراحتی؟ از کجا میایی؟ آهو گفت. من در صحرا تنها هستم و مدتی با آسودگی چرا می کردم امروز یک سیاهی از دور دیدم و گمان کردم دشمن است. گریختم و به اینجا رسیدم اگر برای شما زحمت داشتم مرا ببخشید سنگ پشت جواب داد تو هم حیوان بی آزار و خوبی هستی و اینجا محل امن و راحت و آباد است. و ما سه نفر دوست همدلیم که با خیال راحت در اینجا به سر میبریم اگر مایل باشی میتوانی با ما دوست باشی پس آهو هم همانجا ماند و آنها هر روز در جای جمع شدند و از همه چیزو همه جا صحبت میکردند و سنگ پشت بیش از همه داستانها و قصه های شیرین میگفت و همه خرم و خوشحال بودند. یک روز زاق و موش و سنگ پشت در محل ملاقات مدتی منتظر بودند و آهو نیامد. این بود که نگران شدند و به زاق گفتند در اطراف صحرا چرخی بزند و خبری از آهو بیاورد. زاق پرواز کرد و زود برگشت و گفت در نزدیکی درخت بید مجنون سیادی دام گذاشته و آهو در دام افتاده. سنگ پشت به موش گفت وقت همکاری و فداکاری تو است بشتاب و آهو را از بند نجات بده پس زاغ دم موش را گرفت و به نزدیک دام آورد و موش شروع کرد به بریدن رشته های دام وقتی آخرین رشته دام بریده شده و آهو خلاص شده بود سنگ پشت هم رسید و اظهار هم دردی کرد آهو گفت ای دوست عزیز ما همیشه از تجربه های تو استفاده کرده ایم و حالا زمان فرار است تو که پای گریز نداری چرا به اینجا آمدی؟ سنگ پشت گفت شرط دوستی را به جا آوردم که اگر بلایی رسیده باشد با هم باشیم ولی همه سفارش کردند که سنگ پشت زود به خانه برگردد و همین که او چند قدم دور شد زاغ هم پرواز کرد او هم فرار کرد موش هم پا به دو گذاشت در همین موقع سیاد بر سر دام رسید و دید بندهای دام بریده و آهو در حال فرار است به چپ و راست نگاه کرد کسی را ندید و تعجب کرد که چگونه آهو دام را پاره کرده پس دام را برداشت که برگردد ناگهان در چند قدمی چشمش به سنگ پشت افتاد. با خود گفت اگرچه یک سنگ پشت چیز ای نیست ولی از هیچ بهتر است پس آن را گرفت و در توبره ای که همراه داشت انداخت و در توبره را با نخ محکم بست و آن را روی دوش انداخت و تور پاره را به دست گرفت و روانه شد. وقتی موش و زاغ و آهو به هم رسیدند سراغ سنگ پشت آمدند و چون او را در راه ندیدند فهمیدند که سیاد او را گرفته است. آهو از این بابت خیلی غمگین شد و گفت برای اشتباه من بود که همه در زحمت افتادید و برای دیدار من بود که سنگ پشت به چنگ سیاد گرفتار شد حالا هیچ کاری هم نمیتوانیم بکنیم چرا نمیتوانیم تا وقتی که گروهی با هم یک دل و متحد هستند و برای فداکاری یا همکاری حاضرند همه کار میتوان کرد چاره این گرفتاری هم به دست ماست آهو گفت چه باید کرد زاغ گفت خوب هواستان را جمع کنید ما الان میخواهیم یک نمایش خیلی خوب بازی کنیم. آهوی عزیز، راهکار این است که تو میروی در کنار راه سیاد میخوابی. آن وقت من میآیم و به تو حمله میکنم. مثل اینکه بخواهم چشم تو را در بیاورم. آن وقت سیاد ما را میبیند و تو مثل اینکه از من ترسیده ای برمیخیزی و درست مثل یک آهوی بیمار لنگ لنگان میروی. آن وقت سیاد که میبیند تو نمیتوانی فرار کنی میخواهد تو را بگیرد. وقتی او نزدیک شد تو تندتر میروی و سیاد برای اینکه بتواند تندتر بدود توبره را به زمین میگذارد. آن وقت موش خودش را میرساند و توبره را می میکند و وقتی سنگ خودش را پنهان کرد همه فرار میکنی. همه این نقشه را پسندیدند و شروع کردند. آهو دوید و در راه سیاد خوابید. زاغ به او حمله کرد. آهو برخواست و آهسته آهسته و لنگ لنگان رفت. سیاد دنبال او راه افتاد که آهو را بگیرد. آهو قدری تندتر تر رفت. سیاد برای اینکه تندتر تر بدود توبر را زمین گذاشت و موش مشغول سوراخ کردن توبره شد. آهو هم اول قدری دوید و بعد خوابید تا سیاد معیوس نشود. و خیال کند که آهو دیگر نمیتواند فرار کند. همین که سیاد نزدیک میشد، آهو قدری میرفت و باز می استاد. زاغ هم گاهی پرواز می کرد و همین که دید موش سنگ پشت را نجات داده و آنها مخفی شدهاند آن وقت آهو را خبر کرد. آهو پا به فرار گذاشت و زاغ هم فرار کرد. و سیاد از گرفتن آهو ناامید شده به سر توبره برگشت و با تعجب بسیار دید توبره هم پاره شده و سنگ پشت هم گم شده آن وقت مرد شکارچی چون اسرار این پیشامدها را نمیدانست از فرار آهو و پاره شدن دام و گم شدن سنگ پشت و پاره شدن توبره به فکر فرو رفت و با خود گفت بلکه این بیابان جای جن و پری و قول است و این کارها را قول ها کردند آن وقت از این فکر خیلی در ترس افتاد و توبره و تور پارش را به کول انداخت و به شهر برگشت و به همه صياد ها گفت که این بیابان جای از ما بهتران و جن و پری است و دیگر کسی به آنجا برای شکار نیامد بیچاره سیاد ساده نمیدانست که قول افسانه است و چون ما خودمان اسرار بعضی چیزها و کارها را نمیدانیم، خیال می‌کنیم قول در آن دخالتی داشت. بار، موش و زاغ و سنگ پشت و آهو که با همکاری و همفکری چند بلا و گرفتاری را از یکدیگر دور کرده بودند با سلامت و خوشی سال‌های سال در آن صحرا زندگی می‌کردند.